داستان پنجم امعکا آفتاب بر تختهای بارنداز از ساعت چهار بعد از ظهر یک روز گرم پاییزی کمی گذشته بود ساندرا کلفت خانه از ظهر تا آن وقت ده بیست بار به کنار پنجره رو به دریاچه آشپزخانه رفته و برگشته بود بی آنکه لب از لب بردارد بار آخر که برمیگشت بند دامنش را با بیخیالی باز کرد تا آنجا که کمر چاقش اجازه میداد کشید و تنگ بست. سپس به کنار میز میناکاری برگشته و لباس پیشخدمتی نونوارش به آرامی روی صندلی روبروی خانم اسنل نشست. خانم اسنل که کار شست و اتو زدن را تمام کرده بود، مثل همیشه مشغول خوردن چای شد تا بعد قدم زنان جاده را در پیش بگیرد و به ایستگاه اتوبوس برود. خانم اسنل کلاهش را به سر گذاشته. همان کلاه خوشنمایی که نه فقط در سراسر این تابستان بلکه سه تابستان گذشته به سر گذاشته بود در وقتهایی که گرما بیداد می کرد در روزهایی که یأسگی یا را پشت سر می گذاشت در مدتی که پشت ده ها میز سرگرم اتو کردن میشد و با ده ها جاروی برقی رفت و رو نشان مخصوص کارخانه کلاهسازی کارنگی هنوز تویش بود رنگ باخته بود اما میشد گفت خط بر نداشته بود ساندرا برای بار پنجم یا ششم خطاب به خود و نیز خطاب به خانم اسنل به صدای بلند گفت: فکرشو نمی کنم ازممو جذب کردم که فکرشو نکنم چه کاریه؟ خانم اسنل گفت حرف حسابی میزنی من هم بودم فکرشو نمیکردم راستی که فکرشو نمیکردم کیف منو بهدعیزم. روی قفسه یک کیف چرمی بسیار بزرگ بود که تویش نشان مخصوص کارخانه سازی به همان گیرایی نشان مخصوص توی کلا دیده میشد. ساندرا بیان که بلند شود دستش را دراز کرد و آن را برداشت. کیف را رو از روی میز به خانم اسنل داد. خانم اسنل بازش کرد و یک پاکت سیگار با تعم نعنا و یک لفاف کبریت جیبی باشگاه استرک از تویش بیرون آورد. خانم اسنل سیگاری روشن کرد. سپس فنجان چای را نزدیک دهانش برد اما بیدرنگ پایین توی نلبکی گذاشت و گفت اگه زود سرد نشه با اتوبوسم نمیرسم. به ساندرا نگاه کرد که با افسردگی به صف مائتابه های مسیح روی دیوار چش دوخته بود خانم اسنل آمرانه گفت فکرشو نکن فایدش چیه فکرشو می‌کنی این پسر یا به مادرش میگه یا نمیگه همینو بس پس چه فایده داره فکرشو می‌کنی سا جواب داد فکرشو نمیکنم اما کار دیگه ای هم از دستم بر نمیاد آخه آدم داغ میشه وقتی میبینه این پسره پاورچین پاورچین همه جای خونه رو زیر پا میذاره آدم صداشو نمی شنوه آخه یعنی میگم هیچکس نمیتونه تونه صداشو بشنوه همین دیروز که داشتم لوبیاپوس میگرفتم. درست پشت همین میز چیزی نمونده بود دستشو لگت کنم گرفته بود زیر میز نشسته بود. گفتم که من بودم فکرشو نمی کردم. ساندرا گفت: یعنی میخوام بگم آدم هر حرفی که میخواد دربارش بزنه، باید سبکو و سنگین کنه. آدم دیوونه میشه. خانم اسنل گفت: هنوزم نمیشه خوردش وحشتناکه. آدم چطور میتونه حرفاشو کلمه به کلمه سوابق و سنگین کنه؟ ساندرا که ریزه های خیالی نان را از توی دامنش می گفت: آدم پاک دیوونه میشه، باور کنین. من بیشتر وقتا حال دیوونه ها رو پیدا می کنم. سپس با بیزاری گفت یه بچه چهار ساله. خانوم اسنل گفت بفهمی نفهمی بچه خوشگلیه. به اون چشمایی درشت و قهوهیش نگاه کردی؟ سانرا دوباره اخم کرد و گفت دماغش به پدرش رفته. فنجانش رو برداشت و خیلی راحت از آن خورد. فنجان را که روی میز می گذاش با نارضایتی گفت نمیدونم چرا خیال دارن تا آخر اکتبر اینجا بمونن یعنی میگم اونها که الان هیچ کدوم نزدیک آب نمیرن نه خانم توی آب میره نه آقا توی آب میره نه بچه توی آب میره هیچ کدوم الان پا تو آب نمیذارن دیگه حتی سوار اون قایق لجام گسیخته نمیشن سر در نمیارم چرا این پولهای بی زبون دور میریزن نمیدونم تو چطور میتونی چای تو بخوری من که نمیتونم لب بزنم. ساندرا. رنجید خاطر به دیوار روبرو رو خیره شد و گفت نمیدونی چقدر دلم میخواد راه بیفتم برم شهر هوا و نیست از این خراب شده بدم میاد و با دشمنی به خانم اسنل نگاه کرد برای تو فرقی نمیکنه تو سر تا سر سال اینجا زندگی می کنی خون و زندگیت اینجاست برات مهم نیست خانم اسنل که ساعت بالای اجاق برقی را نگاه میکرد گفت حتی اگه دهنم و بستوزونه باید بخورمش ساندرا ناگهان پرسید اگه جای من بودی چیکار کار میکردی؟ یعنی میگم تو بودی چیکار کار می کردی؟ راستشو بگو این سوالی بود که خانم اسنل آن را مثل پالتو پوست خز دو دستی چسبید بیدرنگ فنجان چای را پایین گذاشت و گفت این یه حرفی اولا من فکرشو نمیکردم. بعدشم دنبال یه جای دیگه ساندرا میان حرفش دوید. من فکرشو نمی کنم اینو که میدونم اما من بودم فقط میرفتم برا خودم.